بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والى وصحبه أجمعين اما بعد بحث امروزمون امتداد بحث گذشته است یعنی تقالون بررسي که من داشتم من خیلی از مؤلفین هستن که بحث ها را از هم دیگر جدا میکنن هرچند که بحث همون بحثه مثلا بحث امروزمون حالا ما دو تا قول داشتیم یکی قول جبریه داشتیم یکی قول قدریه داشتیم آخرین قولی که ما داشتیم قول جبریه بود درسته الان این قولی که ما داریم قول هم مثل قول جبریه هست قول قبلی بعد هم که در درفت آینده خواهیم داشت بحث قول حالا اهل سنت یا قول صحیح میخوام بگیم بعضی ها گفتن میثاق جدا کردن گفتن میثاق همون فطرت و بعضی دیگر گفتن که نه اسلامه این بحثش میگذاریم برای جلسه آینده بحث امروز با خیلی زیاد طولانی نیست خیلی خلاصه هست الله سعی میکنیم که خلاصه هم در انتداد همون بحث فبلی استدالای جدیدی که دارن برای خودشون الله سعی میکنیم که پاسخ رو باشیم و پاسخ بدیم به شبهاتی که دارن تا اینکه در شبهات اهل بدعتی یا بگیم مخالفین اهل سنتی حالا هستی که اسمش بخواهم بذاریم قویل های مردود. درش رو میخوام ببندیم و ببین به اون چیزی که صحیح و ثواب هست و شبهاتی که پیرامون اون ادله هست انشالله سعی میکنیم با سفر باشیم و جواب بدیم بر اعتراضات قول سفر اینه که گفتن فطرت اون چیزی هست که خدا در انسان گذاشته از انکار و معرفت از کفر و ایمان اون چیزی که در ذات انسان خدا گذاشته که کافر کافره که در ذات انسان خداوند گذاشته خداوند جهنمیان را مشخص سرده به هرسیان را مشخص سرده این فطرت فرقی کرد به قول قبلی همون یکیه مثل گفته قبلی هست لیکن استدلالشون از استدلالشون مثل استدلال قول قبلی هست و بعضیالا قولهای جلیبی دارن مثل اولیش استدلالشون به فرمودی خداوند فطرت الله انتی فطر الناس علیها لا تبدیله لخلق الله لا تدي ان گذاشتن لا تبديل لخلق الله میگه خلقت انسان اون چیزی که خداوند در انسان گذاشته شخص کافره دیگه غیر ممکن که مسلمان بشه لا تبدیل لخلق الله شخصی که مؤمنه هم غیر ممکن که کافر بشه همون چیزی که قبلا بوده خداوند نوشته حالا هر چقدر بیا نماز بخونه روزه بگیره کافر کافر از همون اولی که خدا مان، و اگر خدا را بکن من هم از همون جا کافر بوده تا وقتی که ببینه و بحث جهان می‌دونیم. یعنی انسان از همون اول از ابتدای خلقتش تا آخر خلقتش لا تبدیل به خلق خلق خداوند اول دیش. آیا این تفسیرشون، آیا این استنباطشون با توجه به این آیه درستی یا نه؟ اول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 لا تبديلن خلق الله دین الله این دینی که قبلا درس ما گذاشته این خلق خدا خلق صحیح خدا این فطره صحیحه راه عابدشنا نکنید تبدیلش نکنید به چیز دیگه این ترجیح امام ابن جریر طبری است به معنای نهی نکنید لا تبديل لا تبدل و اینا لغت عربی زیاده و عزله و استشهاد به آیات و نمیدونم به آیات عرب بحثش تفسیر کلام بحثش نمیخوام باز بکنیم دو با مدرد این مسئله ما اگر بالفرس بگیریم که این لا تبدیل به معنای خبر هست بر حسب ظاهرش بر حسب ظاهرش و این که خلق خداوند عوض نمیشه چگونه ما میتونیم بفهمیم اگر بالفرس به معنای خبر بگیم، به این صورتیه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 حیوانی که به دنیا میاد، بهیمه. رسول الله صلی الله علیه و آله سلم را به یک حیونی تشبیه میکنه که سالمه. درسته؟ حیوانی که سالمه به دنیا میاد. و بعد در اون حیوان تغییراتی انجام داده میشه. صرف همان. اجزاعه لشيطان و لا فلا يغيرنه خلق الله من أمرشون ميكونه خلق خدر عباد بكنا خلق خدره كونه عباد بيكونه شخص صعلم رب دوشش ميكونه تشماش وكور ميكونه درسته بعد اين خلق عباد بيشه فس خلقات قدوان تبقين حديثك مفسري اين آيه هاس خلقات قدوان ثابت دار تمامي مخلوقات ادعادل قدوانت خلقت خداوند ثابته فترت ثابته ما ها هستیم فابهوا او یونسرها او یمجسها نه رسول الله صلی الله علیه و سلم مثاله اینچینی میزنند و بعد میگه هم و بعد در این آیه خداوند نگفته که فترت تغییر پیدا نمیکنه خداوند در این آیه لا تبدیل لخلق خلق الله چه فرقی هست بین تبدیل و تغییر در حدیث ما داریم که چی پدر مادر تغییر میرن در خلق درسته؟ و در آیه داریم که این خلق تبدیل نمیشه تبدیل نمیشه عوض نمیشه یعنی نگاه بکنیم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 این تغییر شد پس فرق بینه تبدیل و تغییر تبدیل و تغییر این فترتی که در نهاد انسان هست تبدیل نمیشه ولی تغییر درش ایجاد میشه مثل اون شیوانی که به دنیا میاد گوشش میبرن ششماش دور میکنن تغییراته اگر یک روزی بخواد خواد بر بگرده میتونه بر بگرده اساسش عوض نمیشه لا تبدیل خلق الله این خلق خدایی که در نفس انسان گذاشته در هیچ شخصی عوض نمیشه سمیدیم؟ پس این منظور این آیه هست و خداوند میخواد بگه که شما نمیتونید اساس این خلقت رو عوض بکنید کاری که میتونید بکنید یک تغییراتی در شکل و ظاهرش بدید فقط تغییرات در شکل ظاهرش و ظاهرش رو بس. این مفهوم و منزولی که علماتش که همینه. سب و معنی. ما در فرمودی خداوند فاقم وجه کل الدین حنیفا آیه سی ای سوره روم فاقم وجه کل الدین حنیفا ما در ابتدای آیه نگاه بکنیم که این شیرین آغاز میشه دستور به رسول الله علیه و علیہ که فاقم وجه کل الدین حنیفا فترت الله اللہ که درسته تا آخرش. خداوند به رسول اصلا قصر دستور میده که بر چی؟ بر فطرت اساسیش و اصلیش بر بگرده و بیسته درسته پس این فطرتی که رسول ها سبقاتنا بهش دستور داده میشه این چیز محمودی هست یا مزموم؟ چیز محمودی هست چیز خوبی هست اگر قرار بود بر حسد معرفت و انکار سابق بود جهنمی بودن و بهشتی بودن سابق بود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 چون در اینجا دستور داده میشه به رسول آسان سلام به تمامی بشکیر که بر آن چیزی که برای خلقت شدن استواری ببردن در صورتی که چنین نیست که هر شخصی که دلش خواست بر هر چیزی که میخواد مثلا به فرس استواری بکنه و انجام بده چرا؟ چون خود من در قرآن میگه در خود آیه قرآن داریم که خود میفرماید: ان الله لا لَا يَعْمُرُ قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَع اگر ما فصل قول اونها بگیریم که خداوند از اونها خاصه که باید کافر بشن پس خداوند دستور و فحشامون کرد در حالی خداوند در قرآن میگه که بگو ای محمد قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون بخضران دارید نسبت میدی اون چیزی که نمیدونید قل امر ربي بالقسط خداوند دستورد داده دا دا به عدالت پس این به چه اول واضح هم فهمیده همه گیت نشیده دوباره دو نیا اولا ما گفتیم قول جمهور مفسدی بر اینه که این آیلات تبدیل به معنای نهی نه به معنای خبر دو من به سرس بگیریم به معنای خبر اگر بگیریم به معنای خبر منظور چی هست فطرت اصلی که انسان برش خلقت شده نه اون کفری که یا کافری که قبلن مشخص شده کافر هست خبر بر اساس این که اون اساس خلقت انسان عوض نمیشه نه این که اساس اون چیزی که قبلا خدا نوشته عوض نمیشه چون این اختیارش دست خود انسانه و خداوندم هیچ وقت دستور به فخشا همون کرد نبیده و بحث تبدیل و تغییر کردی که چه فرقی با هم دیگر دارن بوا توجه به حدیث بود نشد استدلال دومش بود بی در سوره خدایوند در عمران آیه 83 وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وله اسلمت وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و طوعا وكرها گفتن اشخاص همه مردم تسلیم خدا هستند یا با کراهت یا با قصد خودشون و اشخاصی هم نمیخوام. پس انسان مجبوره اکراه درش هست توعن و کرها یعنی اکراهن و یا خواب با قصد خودشون پس اکراهت هست جواب هست؟ آیا باقا ما هایی که مسلمان هستیم کسی ما را مجبور کرده که مسلمان بشید از خودمان بگیریم مشکل اساس چمچی هست اساس انحرافشون در این هست که بین تقدیرات شرعی و کهانی نمیتوند تشخیص بده. تقدیرات کهانی اموری هست که لازم نیست خدا من داشته باشه خدا من خواسته خورشید دلور بکنه آیا خواسته خداوند که بیاییم ما خورشید را بپرستیم از ما خواسته قرصی رو بده خواسته قرصی طول بکنه ما ازش نمیدونم بریم زیر آفتابو نمیدونم از نورش نمی استفاده بکنیم ولی از ما خواسته کی رو بفرستی از ما نخواسته این خواسته کونی خدا بنده لازمی خواسته کنی محبت یک چیزی نیست اما خواسته شرعی خدا بنده چیزی که خدا هم بهش دستور میده کاری که میخواد انجام انجام کاری که می‌خواد ما انجام بدیم مثل نماز خوندن روزه گرفتن خدا دوست داره ما انجام بدیم الا خواه اون شخص انجام بده انجام نده خداوند از ما میخواد که ما نماز بکنیم چه من و چه اون شخص هندوسی و چه اون شخص بودایی و چه اون شخص حالا شیوه سنیش فرقی میکنه همه مخلوقات خداوند ازش نماز خواسته و یک تا فرسی خواسته. سیاسته بر این به همه اصل متلایعون الا اینا بین گفتیم دو تا تغییرات تغییرات کونی و شرعی فرق ندادن و در دین انحراف ایجاد دادن نگاه کنیم در این آیه بله اصلا منفع سما و اتیوان آر بحث تقدیر کونیست نه تقدیر شرم. این تسلیم است بر اساس آن چیزی که از آنها رو شلقت شدن یعنی الان شما که اهل کشمید پدر مادرت فلانی هستند، شما چه بقایید چه نقایید مشیت خداون بوده که شما چیدین باشید تقدیر کونی هست الان خواه اون چیز مثلا به فرس قلقت ابلیس خداوند من خواست ابلیس باشه و ابلیس هم هست آلا چه به خوبی چه به هاش ابلیس خوبی داره بله ابلیس خوبی داره اگه ابلیس نبود دیگه جهاد بود دیگه شما میزن میزن خودمان غفاله میدونید سه خودمان رحم و رحمی جهاد برفا میشد دیگه این چینی چیزا نبود دیگه اصلا خدا را فالا همین جز حکمت‌های خداوند البته قضا و قدر بحثش مفصل بعدها بعد مفصل و بحث متفاوته که ان الله بعد ها بعد از مصاحبه خدمت مت لیکن اینجا به خاطر بحث جمهور متفکرین بر همینن که این آیه به منظور تقدیرات کلی هست که خداوند با کلمه کنش پیکن کرده یعنی خواسته که بشه و شده حالا هرچند که چه مؤمنش چه کافرش تحت مجیعت کهانی خداوند هست و نمیتونه مخالفت بکنه با تقدرات خداوند مؤمن شخص مؤمن تسلیم امر خداست با قلب و قالبش و کافرم تسلیم امر خداوند اکراه هست یعنی اون شخص کافر نمیتونه نسب عوض بکنه نمیتونه بندگی عوض بکنه نمیتونه مخلوق بودن خودش عرض بکنه و له اسلم من فى السماوات و غضا یعنی همه این چیزی که در ها و زمین هستن تسلیم شده ی خداونده یعنی از آن خداوند. چه بخوام چه نخوام، تو علم کرخم چه بخواهید چه نخواهید شما مخلوقید شما نمیتونید با اختیار خودتون از اساس و خلقت خودتون خودت خالق بشی. نبی این منظور که این اسلام اسلام شرعی این اسلام شرعی نیست این به است. این و له اسلم از منظور لغویش هست نه به منظور اصطلاحی اسلامی که از طرف خداوند اومده به پیامبران را فرستاده و براش این نهای به منظور تسلیم امر توری خداوند نه امر شرعی دوم امر اقرار اول اقرار اولی که خداوند از مهاجرت گرفته باید اخلا من بنی آدم و شدم اون آیا درش اینا میگن از همون اول اشخاصی مجبورا مؤمنند و اشخاصی مجبورا درسته با این آیه باجوبیه ولا اسلمت و هر که در اون موقع آسمون و زمین نبوده اونها میگن که انسان مؤمن باید مؤمن بشه کافر باید کافر بشه خب ببخشید وقتی که در این آیه اشاره شده وای در خدا بنی ال امم ظهورین ذریاتهم اشهدهم علی ان قسم الا لربکم آیه در اونجا اکراه بود یا حنشتو بود همش عام بود یه چیزی که خدابند حجتی در نفس بندگان گذاشت که با آن میتونه خدا را بشناسن هیچ اکراهی درش نبوده هیچ درست نبوده اون چیزی که متابعا بوده خداوند اونجا خودش رو نشون میده به بندگانش و ازشون دواه میگیره و این چیز رو در نفسشون میذاره و اینم تفسیر این آیه و این, این, این مندوب از عده اصحاب از و همچنین تابعین روایت شده این خلاصه بحثمون حتی که ما میتونیم خاتمه می بدیم این بحثمون با اینکه رسول الله صلی الله علیه و در حدیث قدسی میفرمایند که خداوند میگوید انی می خلقت عبادی فنافا بل راجرا ما شنافا دور الشرك ان به في السلامه خلق كده کیا واضح شم کرده تعیدارشون داده فشتالتهم شيطين فشتالتهم شيطين وحرمت عليهم كشي. ومجد الخدمة كادا كادا. ما احلل فلا شيطان ما دیکچی انهارا اون چیزی خدا حرام کردی و حلال بهشون کردی و سبب شده حالا عدله بر سالم بودن انسان مسلمان بودن انسان خداشناس بودن انسان زیاده این شما جلسی و اندخواهیم گفت عدله زیاده ولی انسان که انسان سالمه احل اساسش حالا چه سردند مومن باشه چه کافر باشه خدا را میکنه کنه بشنس. این حدیث کافی در بدین ها که ما اگر یادتون هست با توجه به با توجه به حدیث ما من موجود الا يدا الله فسبحوه بجانب او يمجده لو ينصرانه باطرجون حديث و مفصله و دستون دادیم که چرا رسول الله صلی مثال به حیوان میزنن و چرا مثال تغییر و مسائلی که درش بود قبلا بهش اشاره کردی قراران دیگه نمیخوام اون خلاصه رد بر گفتگو قبلی رو تکرار بکنم اون رد قبلی هم میشه بر این اضافه کرد که ما در اینجا با یک حدیث کل شکواتشون رو برباد داریم این دو تا دلیل اصلی شنه. عذری دیگه من صدور کردن که اصلا نیاز نیست اصلا باعث ازی بشه نیاز نیست که اصلا ما بخوام بحثش رو اینجا تا اینجا همین بحث کافی هست ان بحث بعدی بود بحث میثاقه و بحث اسلامه بحث ها هر دو تا بحثا یکی هستن که بعضی از علما جداش میکنن ان شاء الله سعی میکنه اجازه بنده که چند جلسه شاید ما وقت بگیرم چون از اراذ این گفت بعد اراذات یک بار اون میشه نمیشه ان شاء الله بحث ها مفصله بعد با هم اگه چه سؤال هست؟ سبحان الله و سبحان الله و محمد آل